یارب مرا قربان دین مصطفى کن جانم به راه اطلاع دین فدا کن از پاش کن زنجیرهای بردگی را ت و ق اصارت راز گردنها رها کن یارب مسلمان ا ن آلم را دگر بار دادین و آین نبی جان ها شنا کن از جور اوسیان د ل ب ا زخمی سیارم با مرهمه وحده دل مرا دوا کن ی ا ر ب مرا قربان دین مصطفى کن جانم به راه اطلاعی دین فدا کن از با شکن زنجیر های بردگیران توقع اصارت راز گردن هاره ها کن هر جا مسلمانی ب زیر پای زمه هست افکر نظر بر مسلمین تو ا ع ت ن کن با ب وحدت جان ما را شست و شوده ر شور و وفاداری درون دل بپا کن یارب مرا قربان دین مصطفى کن جانم به راه اطلاعی دین فدا کن از ب ا شکن زنجیر های بردگی را ت و ه اصارت راز گردن ها رها کن کشتی امت را به ساحل رهن من باش یارب دل ما را تول هم ریز وفا کن کشتی امت را به ساحل رهن منبان یارب دل مرا تولم ریز ه وفا کن پ یارب مرا قربان دین مصطفى کن جانم به راه اطلاعی دین فدا کن از پا شکن زنجیرهای بردگی را ت و ق ه اصارت راز گردنها رها کن